علایدین اونیه اول رجب 642 روزی که آن درویش بیمو با آن لباس عجیب و غریبش سر راه پدرم سبز شد من آنجا نبودم با چند تن از دوستانم به شکار رفته بودیم روز بعدش برگشتم به قونیه که رسیدم دیدم ماجرای آشنایی پدرم با درویش سر زبان‌هاست همه یک چیز می‌پرسیدند کیست این مرد که معلوم نیست از کجا آمده و اصل و نسبش چیست چطور شد عالمی مثل مولانا او را جدی گرفت و در برابرش تعظیم کرد از آنجا که از بچگی عادت کرده هم ببینم همه در برابر پدرم سرخم می کنند، اصلا فکرش را هم نمی کردم که روزی برسد پدرم به نشانه احترام در برابر کسی تعظیم کند. پدر من فقط در برابر فرمانروایی یا صدر اعظمی ممکن بود سرخم کند، نه در برابر اشخاصی دون از این رو شنیده هایم را باور نکردم اما به خانه که رسیدم که را قضیه را تأیید کرد از آنجا که تا به امروز نشنیده نامادرییم دروغ بگوید یا مبالغه بکند به باور کردم که پدرم در بازار جلوی چشم همه دست درویشی یک لاقبا را بوسیده علاوه بر این آنطور که می گفت، این مهمان ناخوانده که گویا اسمش شمس تبریزی است قرار شده از این به بعد با ما بماند. کیست این غریبه که انگار یک دفعه از آسمان با زنبیل پایین آمده و جلو پدرم سبز شده. میخواستم با چشم خودم ببینم از کرا پرسیدم، این مرد چرا سر کلهش پیدا نیست را با نگرانی پشپش پش کنان گفت هیس یواشتر پدرت و درویش به کتابخانه رفتهاند و در را هم به روی خود بستهاند از دور صدایشان مثل زمزمه میآمد اما نمیشد فهمید چه میگویند داشتم به آن طرف میرفتم که کر را جلوم را گرفت بهتر از صبر کنی اللاعدین نمیخواهند کسی مزاحمشان شود روز به آن بلندی تمام شد و از کتابخانه بیرون نیامدند روز بعد هم همانطور روز بعد هم مگر چقدر حرف داشتند که به هم بزنند مردی مثل پدرم چه چیز مشترکی ممکن بود با درویشی عادی داشته باشد؟ یک هفته گذشت یک هفته دیگر هم که را هر روز صبح چاشتشان را آماده می کرد و در یک مجمعه جلوه در کتابخانه میگذاشت؟ با آنکه هر روز غذاهایی لذیذتر از روز پیش درست می کرد، پدرم و شمس جز تکه اینان گندم و پیاله شیر شیرربز نمیخوردند و باقی را میگذاشتند. خانه من به هم ریخته بود. هر روز که میگذشت عصبیتر می شدم. میفهمیدم کش خلق شدم اما نمی بر اعصابم مسلط شوم. در ساعتهای مختلف روز، چشمم را به سوراخ در میچسباندم و داخل کتابخانه را نگاه میکردم. اگر در را یک دفعه باز میکردند، میدیدند چون بات میزدم و دارم به حرفهایشان گوش میدهم. اما برایم مهم نبود. بدون خستگی هر روز زیر نظر گرفتمشم. اما چیز خاصی ندیدم. چون پردهها را تا نصفه کشیده بودند. توی اتاق تاریک روشن بود. جز چند کلمه که گهگاه انگار در هوا میقااپیددم تنها چیزی که میشنیددم پچ بی بیپایان بود. وقتی هم چیزی برای دیدن و شنیدن نباشد آدم رفته رفته توی ذهن خودش. شروع به خیال بافی می کند یک بار که در حالی که گوشم را به در چسبانده بودم قافلگیرم کرد اما نه عصبانی شد نه سرزنشم کرد او هم دستکم به اندازه من کنجکاف شده بود می‌خواست بداند قضیه از چه قرار است راستش زنها ذاتن کنجکاون دست خودشان نیست اما روزی دیگر برادر بزرگم مشم را گرفت با حالتی سرزنش آمیز گفت حق نداری دیگران را بپایی. پایی به خصوص مخفیان پاییدن پدر خودت اصلا کار ای نیست شانه ام را تکان دادم اینکه پدرمان شب و روز تمام وقتش را با مردی غریبه بگذراند و خانواده اش را نادیده بگیرد به نظرت مسئله ای نیست. اما پشت در گوش ایستادن من مسئله است. بیشتر از یک ماه است صورت پدرم را ندیدم. این طور ترد شدن تو را ناراحت نمی کند. برادر بزرگم با عصبانیت گفت. کسی کسی را ترک نکرده، پدرمان رفیق و همرازی را که سالها در جستجویش بوده در وجود شمس تبریزی پیدا کرده، به جای این که مثل بچه ها شکایت کنی و ناله سر بدهی باید خوشحال باشی، اگر کسی را واقعا دوست داشته باشی، خوشبختی او را آرزو می کنی. بیا این هم حرفی که فقط از دهن آدم صاف و سادهی مثل برادرم ممکن است در بیاید. می همه چیز روبراه باشد. همه ی آدم ها خوشبخت باشند. از بچگی همین طور بوده. او نور چشمی پدرم پسر با ادب و با کمالات بود. منم اما بچه سرتقو از دیوار راست بالا برو و غیر قابل درک خانه بودم. شاید هر کسی را در این دنیا برای نقشی آفریده و اگر همه نقش خوب را قبلا گرفته باشند تو هم نقشی را که نصیبت شده میپذیری. چه بخواهی چه نخواهی. ولی عهد بزرگان خاندان و نور چشمان پدرم شدن قسمت برادر بزرگترم بود سهم من هم بر عهده گرفتن صفات باقی مانده چهل روز پس از آن که پدرم و شمس تپریزی خودشان را در کتابخانه حبس کرده بودند امروز صبح اتفاق عجیبی افتاد باز هم جلو در چون باتمه زده بودم و داشتم به سکوت داخل اتاق گوش می کردم که ناگهان صدای درویش را شنیدم که می گفت دیگر زمان خارج شدن از این اتاق فرا رسیده مولانا در روزهای گذشته در باره چهل قاعده صوفی مسلکانی که دلی باز و روحی در پرواز دارند صحبت کردیم و هر روز در باب یکی از قاعده ها به تفکر پرداختیم. از آنجا که امروز آخرین قاعده را هم به اتمام رساندیم، بهتر است به میان مردم در نبودنت لابد باعث نگرانی خانوادت شده. پدرم فورا اعتراض کرد. نگران نباش، زوجه هم و پسرانم آنقدر عاقل هستند که حالم را درک کنند و چند روز دیگر نبودنم را تاپ بیاورند شمس گفت زوجت را نمیدانم اما دو پسرت به اندازه زمستان و تابستان با هم فرق دارند حدیث شریف میفرماید پسر راز پدر است اما کدام پسر؟ پسر بزرگت راه تو را میپیماید اما زندگی پسر کوچکت در مجرایی کاملا متفاوت جریان دارد. حسد، شک و انتقاد دلش را سیاه کرده. همین که این حرفها را شنیدم، صورتم داغ شد. ای درویش بیشو هنوز که مرا نشناخته چطور جرأت میکند همچو چ حرفهایی درباره بزند اما به محض اینکه این, این سوال از ذهنم گذشت شمس از داخل اتاق طوری که انگار بخواهد جوابم را بدهد حرفش را ادامه داد پسر کوچکت گمان میبرد نمیشناسمش حال آنکه میشناسمش زیرا در این چهل روز که او گوشش را به در می چسباند و از سوراخها ما را می من هم او را تماشا می کردم. موهای تنم سیخ شد. بیان که فکر بکنم، در را چهار تاق باز کردم و خودم را به داخل اتاق انداختم. چشمهای پدرم از تعجب گرد شده بود. هنوز یک دقیقه نگذشته بود که حیرت جایش را به عصبانیت داد. فریاد زد. علا چه می کنی؟ این رفتار وحشیانه ایست پسر عقلت را از دست داده ای؟ با چه جرأتی اسباب ناراحتی ما را فراهم می کنی؟ خودم را به نشنیدن سوالهایش زدم، و انگشت اشاره را به طرف شمس گرفتم. قصد نداشتم داد بزنم، اما در همان حال که از حیجان می لرزیدم، نتوانستم جلوه بلند شدن صدایم را بگیرم. گفتم، به جای این که به من سرکوفت بزنی، بهتر نیست از این مردک بپرسی با چه جرأتی در باره من اینطور حرف میزند؟ پدرم کلمهی بر زبان نیاورد، فقط آه کشید، انگار وجودم سنگ آسیابی بود نهاده برگردنش، همانطور ایستاد و نگاهم کرد، صورتش مانند دری آهنی بسته شد. گفتم، پدر عزیزم که دلش برای شما خیلی تنگ شده، طلبه‌هایتان هم دلشان تنگ شده چطور دلتان میآید این همه وقت به این درویش غارتگر اختصاص بدهید و به دوستدارانتان پشت کنید همین که این حرفها از دهانم درآمد پشیمان شدم اما چه سود صورت پدرم زرد شد غم و نومیدی به چشمانش نشست پیش از این هیچگاه ندیده بودم این طور نگاه هم کند. گفت علا ادین، فوراً این اتاق را ترک کن. عقلت سرگردان شده. برو گوشه خلوت پیدا کن. آنجا بنشین و به اشتباهی که مرتکب شدهای فکر کن. تا وقتی به درون خود نگاه نکرده ای و پشیمان نشده ای از آنجا بلند نشو تا وقتی خامیت را ندید و نشخت ای پیشم نیا. گفتم: اما پدر پدرم این بار با صدایی عصبیتر و خشمناکتر تکرار کرد زود باش برو در حالی که دست و پایم میلرزی خود را از اتاق بیرون انداختم کف دست‌هایم عرخ کرده بود زانوانم قوت نداشت در آن لحظه بود که فهمیدم چه بلایی سرمان آمده به خاطر شمس تبریزی زندگیمان زیر و رو شده بود دیگر هیچ چیز مثل سابق نمی ماند مادرم را سالها پیش موقعی که هنوز کودکی خردسال بودم از دست دادم الان هم پدرم را مگر می شود پدر آدم هم زنده باشد هم مرده لابد می شود